ارز سلام و ادب دارم خدمت دوستان من طاهر طاهری هستم شاگرد و زبان آموز جناب آقای رافع آدم الحاشمی خیلی خوشحال هستم که در خدمت ایشون تلموز بکنم و میتونم مطالب خیلی ارزندهی رو از ایشون یاد بگیرم بچه تمایوزه با بقیه اساتیدی که من میشناسم و در خدمتشون بودم اینه که ایشون مطالب درسی رو و زبان رو به صورت سری کلید کلید هایی که دستبندی شده است به همه کسایی که حالا آموزش میبینن یاد میدن و این از حالت سردرگمی و حالت گیجی که ممکنه برای زبان آموز به وجود بیاد جلوگیری میکنه و کلاس ها اصلا حالت خسته کننده به وجود نمیاد کاملا تعاملی هست کلاس ها و تمام مدت اون زبان آموز و شاگرد درگیر آموزش هست من خودم چون سالها تا آموزش برورش بودم و تدریس کردم دقیقا حس میکنم ساعتها به کلاس هایی رو که یه دانش آموز منفیل باید به و شنونده باشه با کلاس هایی که باید تعاملی باشه و با معلم و صحبت بکنه حرف بزنه. و نظراتش رو ارائه بده کاملا متفاوت هست و نوع یادگیری بسیار باثباتتر و بهتر هست و این یکی از نقاط خیلی مثبت و بارز آموزش های جناب آقای هست و تجربه خیلی زیادی که در این رابطه و در این راستا داشتن کمک کرده که کلیه مطالبی رو که باید به شاگردشون به زبان آموزشون منتقل کنن به صورت یه سری کلید واژه‌ای مرتب و منظم کردن که آموزش رو خیلی راحت‌تر می‌کنه و بهتر تو ذهن فرد می‌شینه. خیلی خوشحالم و خدا رو شاکر هستم که در نظرشون تلمذ می‌کنم و ایشون یکی از اساتیدی هستن که بسیار مقید هستند به اینکه حتی لحظه‌ای را از زمان کلاس خودشون رو مدیون اون دانش آموزا زبان آموز نمی‌کنم و, نمی و های بیشتری رو علارق ببین که حالا از تایم خودشون هست استفاده می‌کنن و تایم بیشتری رو به کلاس اختصاص می‌دن که گاهی من بهشون میگم که مثلا تایم کلاس تموم شده خسته نباشین خدا میگن میدونم ولی خب همچنان ادامه میدن تا اون مطلب رو به اون حدی که تو ذهنشون هست به سرانجام خیلی خوشحالم که در خدمت ایشون آموزش می‌بینم و از این بابت خیلی خدا رو شاکر هستم و اینکه ایشون خیلی توجه خاصی به این دارن که هر فردی رو که پیش ایشون آموزش می‌بینن علت اصلی آموزش رو در نظر می‌گیرن و در اون راستا کمک هم می‌کنن حالا یه نفر می‌خواد کار مترجمی انجام بده کسی می‌خواد کار تجارت و بیزینس تو کشورهای عربی رو داشته باشه و هر علت رو مقصودید که اون فرد داشته باشه برای این آموزش جناب رافه خیلی کمک حالشون هستن و در این راستا هم با توجه به اینکه هم علمشو دارن و هم تجربهشو خیلی کمک میکنن ممنون از اینکه به صحبتام گوش دادین و توصیه میکنم اگر زبان عربی رو میخوایم به شکل خیلی حرفه‌ای یاد بگیرین از شاگردی در محضر این استاد بزرگوار خودتون رو بهره کنید روز خوبی داشته باشین همه به خدای بزرگ بسپارم